آزم، بعضی چیزها را نمی شود گفت. بعضی چیزها را احساس می کنید. رگوپه شما را میتراشد دل شما را آب می اما وقتی میخواهید بیان کنید می بینید که بیرنگ و جلاست. مانند تابلویی است که شاگردی از روی کار و استاد ساخته باشد. عینا همان تابلوست. اما آن روح آن چیزی که دل شما را می فشارد، آن نیست چقدر دلم میخواست میتوانستم برای شما مجسم کنم که آن شب چه کشیدم چه بر سر من آمد اشتباهات گذشته یکی یکی از جلوی من رد میشدند به من دهنکجی میکردند زخب زبان میزدند عشق مرا به باد استهزایی گرفته بودند شکست از خورده ها، ها، فرصت پیدا کرده بودند گویی میگفتند سخت نگیر این هم هوسی بیش نیست سیمای غمزنه دوناتلو موقعی که امواج آب حالت طبیعی آن را وارفته ساخته بودند در نظرم پیدا شد آتش سرخ رنگ که سیگارش از لابلای امواج میلغزید و ناگهان تمام سطح دریاچه را فرا گرفت دیوانه وار قهقهه میزد و مانند مجنون از بند گسیخته از من فرار میکرد و فریاد میکشید تو تو از عشق دم میزنی صحبت مادرم درباره رئیس نظمییه مرا به یاد او انداخت سرهنگارام چه اصراری داشت که شوهر من بشود از اینها وحشت داشتم صورت خود را در بالش پنهان میکردم میلرزیدم سردم میشد تشنج بهم به دست میداد برمیخواستم کتاب میخواندم خواب به چشمم نمی آمد. خسته میشدم و همین که سعی میکردم بخوابم باز این سایه های وحشتناک یکی یکی رژه می و مرا آرام نمیگذاشتند. گاهی قیافه پریشان و عصبانی خدا داد، اندرزم میداد. اما او هم دیگر نرم و موقنع نبود. او هم مرا تهدید میکرد. مثل اینکه میگفت: مهری را ببین.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 دشمنی که در هستی من لانه داشتند و از وقتی به ایران آمده بودم خفته بودند باز سر بلند کردند یکی می گفت مبادا به خانه اش بروی مکان نقاش است. هنرش را هم فدای جاه تلبی کرده سر شوریده او با مقام به سامان نمی رسد شهرت است مبادا به خانه اش بروی چند روز بیشتر با تو نیست آن وقت چه میکنی؟ آن یکی برای شفته پاسخ میداد شیرینی عشق در همین دودلیس. برو به خانه برو کمکش کن آخ چه پرت و پلا میگویم باور کنید که تمام شب را نخوابیدم. خیالات جور و جور دهشتناک و فریبنده امید بخش و ظلمانی نوازش دهنده و پریشان. مرا دائما از یک قط به قط به دیگر پرتاب می کرد. نمیدانستم چه بکنم نمی توانستم تصمیم بگیرم. این یکی برایم مسلم بود که اگر فردا به خانهاش بروم دیگر می پیه یک عمر زندگی پر از مصیبت را به تن خود بمالم می گفتم که من لایق زندگی با او نیستم من نمیتوانم پا به پای او مبارزه کنم.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 این هم که باز ضلت است من تصمیم نگرفتم اختیار از دست من در رفته بود سیل حوادس من رو همراه خود برد در ضمن این را هم در نظر بگیرید که خاستگار ها هم دست از سر من بر نمی داشتند وسوسه اینها هم وباد من بود یکی از آنها با اتومبیل شولت هر روز در خانه من ایستاده بود زده با قیافه عبلهانش به من نگاه میکرد من آنقدر گرفتاری داشتم که نمیتوانستم به این پاچه ورمالیله های بسته اعتناع کنم یک روز در خانه ما باز شد و چند زن با صورتهای پود زده و یک وجب ماتیک پالتوی پوست بتن با انگشتان پر از انگشتر وارد شدند یک نگاه برایم کافی بود که آنها را بشناسم دویدم رفتم پیش مادرم و گفتم خانم جان خوش به حالت برای دخترت خاستگار آمده از خانواده تجاری بودند که راهن سرتاسری از میان املاک آنها گذشته بود و از گود زنبورک خانه به خیابان پهلوی نقل مکان کرده بودند اول برای مادرم شرحی از نجابت و افت من حکایت کردند میگفتند، این دختر توی خیابان سرش رو بلند نمی کند که آدمها را ببیند هرچه مادرم میخواست به آنها حالی کند که نه اینطور نیست آنها دستبردار نبودند وقتی مادرم می گفت که دخترم یک شوهر فهمیده میخواهد جواب حاضر کرده داشتند به خانم پسر ما لیسانسه است آن وقت مادرم می گفت آخر او تا خودش کسی را نخواهد انتخاب نمی کند. جوابشان این بود. البته معلوم است شما اجازه بفرمایید با هم آمد و شد کنند، سینما بروند تا بعد آشنا بشوند. یکی دیگر مادرش با مادرم هم همسفر کربلا بود. پسرشان چند سباهی در فرنگستان معلق زده بود، حالا با دیپلم شرابسازی در وزارت کشاورزی بازرس وس ویژه شده بود. او مرا دعوت میکرد به شب های کلوب ایران میبرد. من نه فقط خوشگل ترین زن در این مجامع بودم، خوش لباس ترین و با سلیغ ترین آنها هم خودم بودم. با اینها با زبان مخصوص خودشان حرف می زدم. یک روز به او گنج لباسم را نشان دادم و گفتم ببینید چقدر لباس کفش، پالتو و پوستو هر چه دلتم بخواهد دارم شما از کجا می توانید اینها را برای من بخرید؟ اقلن 20 شور عطر و پود روماتیک به اونشان دادم مردک سرخ شد و دیگر به خانه نیامد من خوب می دانم که چه فکری درباره من می کرد اما برای من چه اهمیت داشت؟ زندگی دور محور او می شرخید.